پرسیدن که در مورد تمرکز ذهنی و عدم تشتت بهترین و امورترین کار چیه که ما انجام بدهیم برای اینکه تمرکز بهتری بیدیم همیدار باید سکوت رو کم کرد و سکوت رو بیشتر کرد ببسید و نگاه رو باید محدود کرد بعضی ها نشستن همهش نگاهشون به این طرف اون طرفه، اون تابلار میکنن افراد میبینن دقت میکنن و هیچ لزومی هم ندارم ما این اینها تمرکز را از بین میبره پراکنده میشه آدم ذهنش